سخنرانی دکتر محمد اشعری گرمارودی موضوع سخنرانی بحثی پیرامون فرمایش امام حسین علیه السلام هنگام خروج از مدینه جلسه دهم ده بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سيدنا و نبینا محمد التحیرین المعصومین لاسی ما بذیت الله في الأرذین اللهم انت السلام و من السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب الأزت عما و يسفون و سلام منا المرسلین والحمد لله رب العالمین السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبارك الله السلام على الائمه الهادین المهدي السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعین السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علی علي نصير اللهم مالا سدیر و تشهیده اصلاح حسین علیه السلام انما خرج طول طلب الاسلام تی امت جدی قرید و, و ان آمور بالمحروف و انها ان المنکر و سیره به سیرت جدی و عدی زمن عرض تسلیت و پیش آموقدس مولادمون امامه در اجازه میخوام امروز نتیجه بحث نهروز گذشته رو در رابطه با کار امروز کربلا بگیرم من عرض کردم وجود مقدس مولا کونین آقا عبدالله الحسین علیه السلام انگام خروج از مدینه وسیعت کردم که من خارج می شوم برای اصلاح امت جدم اصلاح بعد از اصلاح معنا پیدا میکند کند همانگونه که معالجه بعد از بیماری اگر یک بدن سلامتیش را داشته باشد ادامه سلامتی را حفظ و و نگهداری اون صحت و سلامتی و مواظبت در تندرستی میگوین معالجه نمینامند ولی اگر بدن بیمار شد آلوده شد میکروبه بر برون بدن هجوم آورد اون اثرات و اون سمراتی را که یک بدن سالم بناس بروز بدهد اونها را نداشت میگوین معالجه کنید این بیماری ها را بر طرف نمایید یک مکتب یک نظام یک مذهب بناف اثرات و ثمرات و فوائدی برای زندگی فردی و اجتماعی انسانها داشته باشد وگر نم مکتب حق نخواهد بود اما اگر مکتب بیمار شد و آلود گشت گونه که یک بدن بیمار آثار یک بدن سالم را ندارد و گاهی وزرو و باد دیگران می شود چون دستی که در حالت سلامتی کمک من و شماست ولی اگر شکست و آسیبی دید و بال گردن ما می گردن مکتبی که آلوده شد و بیمار نه تنها سمراتی برای ما نخواهد داشت بلکه وزرو و بال و گرفتاری هم برای انسانه ها به بار خواهد آورد ابی عبدالله اولین پیامشون در این عبارت این است که مکتب جدم و امت جدم را آلوده کرده و من باید اصلاح کنم اما این آلودگی انقدر ریشه ای و امدی و خطرناک است که اگر به قیمت جان من حسین به بدترین شکل ممکن و شهادت همه عزیزانم به سجیع ترین صورت ممکن و اثارت عزیزانم در نهایت درد و رنج صورت به می عرضت. پس نشون میدهد فساد شکلی بالا بوده آلودگی شکلی ریشهی و امدی بوده که نیازمند یک برخورد ریشهی دی اساسی با یک که بسیار حساب شده الهی است و دیدیم در طی نهروز روز این پیش بینی رو کرد و تذکر داد پیغمبر نیز این مطالب رو فرمودند و اشاره نمودند امیرالمومنین و فاطمه زهرا علیهما السلام که شهت ناظرین حقیقی صدر اسلام در غالب خطبه فدک خطبه شخشدیه نامه شفت دو، این دو که بحث کردیم فریاد زدن و جو و شرایط زمان و مکان را به مردم نشون دادن از منابع دست اول اهل سنت از صحاق سته و از سایر منابع حدیثی و تفسیری و تاریخی اهل سنت و اندازه فرصت چند روزه نشون دادم که چند کار بسیار حساب شده منافقانه را دشمنان دانای اسلام شروع کردن یک پیغمبر را بکوبن مقام و شخصیت پیغمبر را پایین بیاورن اجتهاد را در مقابل نفس علم با حس سریع خدا و پیغمبر به مبارزه برخیزند بر مبنای تشخیص‌های فردی و اهدافی که به جهت امیال شهوانی خود داشتند نفس را به بازی بگیرند و باز ذهنها را از فقهالیت بی اندادند تحت عنوان جبر و تحت عنوان عدم کارایی عدل و به اندیش و تفکر فرو نرفدن از یک طرف از طرف دیگر من احدیس کردن خوراک ارزنده مغز و جان انسانه ها را از انسانه ها دریف داشتن یعنی اگر شما بخواهید یک بدن را بیمار کنید از یک طرف قضای سالم را از این بدن بگیرید از از دیگر غذای آلوده كننده رو به این بدن بدهید باز از طرف دیگر حرکت بدنی را که برای حفظ این سلامتی و نشاط جسمی لازم است باز بدارید این سهامل دس به دست هم میدهد که این بدن مشرفه به موت شود با پیکره اسلام و با پیکره مکتب قرآن همین کارو کردند در میان مسلمین ذهن را از فعالیت باز داشتند خوراک سلامتی بخش روح را از مردم گرفت. بسه تحریف شده ابو هريره و كعب الاحبار را وارد جان ملت ها کردند لذا کار به جایی رسید که مردم به این تفکر رسیدند که بعد از واقعه کربلا طبق نقل تاریخ ابن عباس میگوید در مسجد الحرام نشسته بودند شخصی محرم وارد شد و گفت یک مسئله شرعی دارم. پشهی بر این لباس من کشته شده و این لباس من خونیست آیا حج من ثواب من اشکال دارد یا نه گفت تو که ازی که این دقت آرامی کنی گفت من شمرت نزل جوشن هستم گفت یالالعجه خونه به سر پیغمبر رو میریختی اونجا جای دقت و احیاط نبود اما از خونه یک پشه تعریف دین آبود کردن مکتب اندیشه ها رو از کار انداختن و شر رو تا به این حد به نام دین ساخت می کند این کارها را کردن من نه روز توضیح دادم امروز دیگه می چیز کیز دیگه بگم حالا نقطه مقابض در رابطه با کربلا و آشورا چه کردند. و اگر کربلا نبود و بی عبدالله نمی بود اگر اسارت زینب کبراه و قطبه امام سجاد نمی بود امروز تفکر مذهبی من و شما هم همون تفکر مذهبی بود که اون خط می به قرد مردم بدهد خود خدا چکرد یک اگر بخواهم آیاتی را که در قرآن کریم خداوند در مقابل اون خط از این قد بیان کرده کن بیان کنیم خود ده بیش جلس حد وقت می ده دقیقه میخوام اشاره کنم آیات بسیار که یک نمونش اونجایی که ایلاللزین آمنو و عمل و را بیان می کند به نقل تمامی منابع قابل اعتماد اهل سنت که گوشه ای رو اشاره می کنم اگر آن در سوره مریم آیه نبد و شش می فرماید اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا سَالَحَاد سَيَّدِ عَلَوْلَهُمُ اونهایی که ایمان آوردن و عمل سال انجام دادن این سنت پروردگار از سیج الو بزودی زودی ما قرار می دهیم برای این ادبه سیج علی رحمان خدای رحمان قرار می دهد ود آنها را و محبت اونها را در دلها در کشاف زمخشری در دررون منصور سیوتی ریاض نظرت جلد دو صفحه دویشت و این منابع دم دست در زیر این آیه نوشته پیغمبر فرمود این الذين آمنو و عمل و یعنی علی ابن عبی کالب و, آل او و در سوره بیانه آیه ان الذين آمنو و عمل و سالحات هم خیر تبثیر تبری جلد سه صفحه و و یک در رول منصور زیر این آیه سوائد ابن هجر صفحه نبد و نور الابصار شبلنجی صفحه افداد و, و یک که همه از علمای اهل سنتم وقتی این آیه نازل شد آمنو و آمَنُوا وَعَمِلُوا سَالَهَا اولائکه هم خیر البریه غالر رسول الله انتر و شیعت و علی ام خیر البریه علی جان تو و که به دنبال تو می روند این بهترین و ارزنده ترینه امت و مردم خواهند بود سوره معروف اطر ول اطر این الانسان لفی خطر الا الذين آمنو و عمل و صالحات سوگند بر اعد که این انسان ها در خسران سرمایه انسانیشون رو از دست میده بیشاره میگردن و بسن الا مگر اونایی که مستثنا شدهن الذين امنوا و عمل الصالحات همه این منابعی که خوندم از پیغمبر فرسیدن الا الذين آمنو و عمل الصالحات چه فرمود علی و آل علیه پس قرآن کریم اگر میگوید ما این کتاب براو این دین را برای شما در آوردادیم بعد افل المؤمنون مؤمنین به این دین را اگر مؤمن به این دین نباشد این دین برای آنها مثل دست به ای که و با گردن شده است اگر یک پزشک یک انسان متخصص در رابطه با توانمندی های جسمی به شما میگوید قدر دستت را بده این دست برای شما دارد به شرطی که ثالم باشد نه اینکه کاری کنی که باید او را بگردن بکشی و هم کنی خدا میگوید این دینی که من میفرستم فرستم خدا للمتقین قد اصل المؤمنون اگر متقی نباشند مؤمن نباشن این دین سمری برای اونها نخواهد داشت اما متقین و مؤمنین را وقتی میخواهد ربی کنند علی و آل علی را معرفی می کند در سوره تین، الا الله اب اللذین آمن و, و را با یک تأبیلی که از امام باقر و امام صادق داریم، چه زیبا بیان می کند و تین و زی و تین و زیشون و شور تینیم و هادل بلد الامین لغت خلدنال انصاناتی احسن تربیم از مرد دنیاهو افضل إلا الذين آمنو و عملوا صالحات قسم به چین و زیتون یعنی قسم به زنجی، انجیر و زیتون آیا خدای به اون عظمت وقتی میخواهد سوگند یاد کند به یک امری که خیلی بالا نباشد سوگند یاد میکند سوگند به انجیر سوگند به زیتون اگر بر مبنای ظاهر رضیه نگاه کنی انجیر یکی از بهترین میوه است که از نظر تغذیه بدن طبق بدنشناسان عالم انرژی زاد زیتون یکی از بهترین میوه است که در دفع سموم بدن بسیار معثر است اینجا صحبت بدن انسان نیست صحبت جان انسان و مکتب، لذات تفسیر نور سعالین، تفسیر علی جد ابراهیم بومی، تفسیر عیاشی، تفسیر برهان در زیر این سوره نقل میکنند قائل از صادق و علیه السلام و تین و زیتون، ای علی حسن و حسین، سوعان و حسن و حسین که این دو هم خوراک سالم را به جسم شما میدهند و هم مثل زیتونی که در بدن شما سماعی تولید شده را کنار میزند و دفت می کند در پیکره اسلام سموم ایجاد شده را دفت می کند و چور سینین ای علی حدیق ابی طالب و آز البلد الامین ای بلد سرسبز شاداب به مقام نبوت لقد خلق نل انسان پی احسن تقریب ما انسان را اون گونه که با این خورا که جان حسن حسید با این وعدی ایمن نبوزت و با این چور سینای رفیع عظیم ولایت رسند به آنجا که لفت صرف نده انسان تی احسن تقدیم سلمان ها شدند عبوزر ها شدند روش بیاوند سم مردد ناهو اما همین مکتب را کاری می کنند که این مردم به جای استفاده از این زیتون به جای قرار گرفتن در این واضی ایمن به جای رفتن به تور سیناوی بلاوی علی شهود الا الذین آمنو و عمل و مگر آنانی که دنبال علی میروند و دنبال حسن و حسین حرکت به همین جهد همه شما میدانید آیه شریفه یا ایتو ان نفس المطمئنه ارج الارد بکه راضیتن فتخلی فی اواهی فتخلی جنتی در مورد امام حسین علیه السلام است بسیار جدید و زیبا نفت برای جسم ما اگر نفت نباشد این جسم یک بدنی نه نفس میکشد نه راه میرود نه میاندیشد نه حرکت میکند لاشه نیست که باید دفنش کنند وقتی نفت در بدن هست این بدن حرکت و تلاش و فکر و جسی یه داره اما نفض گاهی اماره بچوت ان نفض لعنمالتون بچوت الا ماره مردی یعنی روش نکر در مقام پایین ما گاهی پل بالاتر بینا بین لا اقسمو به یوم القیامه و لا اقسمو به نفض گاهی میره بالا نفض به اونجا میره کن یا ایتو ان نفض المطمئن ارجعی الاربی و وقتی نفض روش میکند ذ پله, پله های نفس نفس اماره به چی برمیگردد به شکم و شهوت نفس لوامه بینابی نفس مطمئنه ارزش ها را شناسایی میکند و به سوی ارزش ها میرود میگه اونگونه که بدن شما روح دارد که بدن را کنترل کند و فرمان بدهد هر که نفس شما غلی تر باشد بدن در اختیار نفس حرکت بهتر می کند مرحوم خای نسیر توسی در کتاب اخلاق ناصری می گه نفس جوهری بسیق است که در بدن تعلق دارد و از بدن به عنوان ابزاری برای اهداف خود سود می جوید نفس بر بدن تعلق دارد و از بدن به عنوان ابزاری برای هدف خود سود می جوید اگر با این دستم که بدن دست افتاده را می دیرم. یا خدایی نکرده به سر افتاده میزنم زنم فرمونده نفت هم فرموند بدن افضا برسی دیگر تشمی کردن به منزله سواره کشتی و کشتی اگر کشتی در جهت حرکت می کند. یا اگر کشتی تلاطم پیدا می کند و غرد می شود اون فرمونده و نا خدای کشتی که کشتی را به کجا می برد؟ در بدن من فرد نفس من اگر آلوده شد بدن کارش آلودگی نفس من اگر تآلی یا کارش تآلی ارزنده نفس یامه حتین است روح ملدها حسین است و حسین نفس مطمئن نیست که جز خدا هیچی برای او ره نیست یا ایتو ها نفس المط نفس المطمئن نست ارجعی الارد به مرزیه این حسین خود به سوی خدا عوج میگیرد و هر که میخواهد به دنبال او برود به سوی خدا میره ببینید از کتانی که در انبیاء یک رجع مشابهت مقتدر ایواح و حسین دارد خدا در قرآن و در تاریخ راجب او چه کرده یک ابراهیم خلیل الرحمن آواده می شود کار در گلوی پسرش بگذارد برای خدا عملی هم نمی شود اما تسلیم میگردد وقتی کار به گلوی پسر می نهد. کار به اذن الله نمیبرد نگران می شود کار رو به زمین می دهد. القليل يأمرني والجليل ينهاني القليل يأمرني والجليل ينهاني متى رحم شبع خدا برای اینکه به من تو به این بنده من اون چنان به من نزدیک شده که اگه میگوید این السلام و به و تو و مماکی لذون هرات العالمین به حساب نیست میگه توافی کنی حج اسماعیل رو هم باید تواف کنی نماز میکنی پشت مقام ابراهیم باید نماز بخونی سعی صفا و مرده می یاد آجر و اسماعی رو باید مطرح کنی منامی روی رمی جمرات باید مطرح کنی چرا؟ چون این بنده با من بود چون با من نام او را مطرح می کنم نام او را مطرح می کنم او حرکت کنی ابراهیم خلیف در مقابل حسین چه کرد؟ که اگر خدا کائنات را به نام حسین قرار بده اگر حجبی رو به عشق حسین قرار بده اگر اون غذا و یه روح بخش وجود را قرآن حسین حسن حسین بنامد و اون روزن زیتون مؤسری را که میخواهی که آلودگی ها را و پیشنه اسلام را تطریه کند حسین بنامد آیا این مبادله و لذا در آیات اله ماشاءالله در این زمینه که من فرصت بحثش رو ندارم در روایات از ندر خیرم بست دو روایت بیشتر نمی کنم هر دو از منابع اهل سنت تاریخ برد بغدار جلد یک صفحه دویست و پنجاب و نه رسول الله لیلته قرد لرعیت و علا صاغ مكتوباً لا اله الا الله محمد رسول الله علیٰ حب الله الحسن و سبط الله فاطمة خیاره الله أبو نویشتنده معروف اهل سنت تاریخ بغداد چارده جلده در بین اهل فن معروفه در جلد اول سبته 259 پیغمبر میگه وقتی میراج رفتم بر ساد عرش دیدم نوشته شده لا اله الا الله تابلویی که خدا و عرشی نشون میده تابلویی که خداوند میخواد نشون بده ببینید وقتی من انسانو آفریدم گفتم و تبارک الله افتن الخالقین دست مریضان برای خلقت ابو سفیان و ابو جهل و یزید و معاویه و فرانکنه تاریخ یعنی ببینی موجوداتم این رو رد کردم آ هر کیان بنگریت الا الا الا اسلام رسول الله علی حب الله الحسن و الحسین الله و فاطمه الله اینا عالم در ذیل آیه شریفه و طلب با آدم من رد این کلمات همه ترشتم دیگه فرصت تام بود حال حال دیگر است کتاب بیارم باز کنم فکر کردم امروز بحث دیگری روزای گذشته میگه آدم ابوالبشر کلماتی رو خدا به او یاد داد که با اون کلمات خدا را بخواند تا اینکه خدا توبه او رو بپذیره جبرائیل اومد میگه اون که از پیغمبر پرسید یا رسول الله کلمات چی بود خدا به آدم یاد داد خب جبرایی رو به آدم اگه میخوای خدا تو رو تجیره بگو یا به محمد حضر علی یا رو به حضر فاطمه یا رو به حضر حسن یا قدیم الهزان به حضر حسن حل سنت بمشتن عرض میکنم اما یه ادامم داره تو کتابای دیگر آدم اینا رو گفت خدا توبه‌شو پذیرفت بعد جبرائیل درخواست کرد جبرائیل یه سوال دارم گفت چیه گفت وقتی این چهار تای اولی رو اسم برم شاد میشم اما پنجمی رو اسم برم گریم میگیره چرا چی قضیه جبرائیل گفت آدم میخوای کربلا برآورده‌شونtd tdtd tdtd tdtd رو به آدم tdtd tdtd آدم رو بدن کرد. نوح سوار کشتی بود. میخواد کشتی رو حرکت بده. جبرائیل آمد پنج می‌خواست. خدا میگه این پنج میخ بدنه کشتی از بکوب. کشتی تو آرام به مقصد برسه. یکی خوابدل به نام پیغمبر دوم علی سوم فاطمه چهارم حسن پنجمی به نام حسین تا دید از بدنه کشتی خون جاری شد. کو جبرائیل چی؟ کو نوح تا؟ و کائنات به نام حسین میلرزه آه. کشتی رو طوفان حرکت تر آرام داره میره جلو یه وقت به یه منطقه رسید کشتی میلرزه تلاطم داره جبرائیل کشتی چی شده؟ گفت میدونی از کجا داری رد میشی از زمین کربلا داره که <تصفيق> لنو لشاندار و نو رو گذیه ما حو السلام اله رو خدا خدا در اونجا به رخ اینها کشیدند یک روایت دیگر با از اهل سنت تاریخ بغداد چندل عماد متقی اندی تاریخ و دمشق ابن عساکر قال رسول الله لم تتقر اهل الجنه في الجنه قالت الجنه يا رب اليس و اتني ان تزينني بركنين من اركانك وقتی بهشت برپا می شد بهشتیان در بهشت متقردی شدن این رو توجه داشته باشید از نظر دین شنافتی و معرفت دینی بهشت در فرهنگ پیغمبر و قرآن و اسلام یعنی که یعنی در اون جایی که عالی ترین حد کمال ممکنه این انسانه یعنی در قالب مثال بگم شما میگید دوره دکترا در دانشگاه. یعنی در نظام آموزشی ما انسونها وقتی دبستان میگن میگه خیلی مونده راهنمایی میگن میگن هنوز خیلی مونده دبیرستان و لیسانس و فوق لیسانس میگه هنوز مونده میرسه به دکترا میگه اون بالاترین حدی که فعلا در نظام آموزشی ما کلاس و درس و استاد و اینها میذارن اون کل فعلا در توان ما انسونها دوره دکترا در توان خدا که عالمی برترین عالم ممکن که بر یت سگان عالم در اونجا جمع شود اون بهشته حدا زینت هر جا به اقتضای اونجا مهره رو به گردن یک اولاغ بندازن زینت اولاغ حساب می شود ولی خرمهره به گردن یک انسان زیبا توحینه به یک انسانه زینت هر جا به اقتضای اونجا زینت بهشت یعنی چه؟ زینت بهشت یعنی که تاریخ بغداد، کنزل و مال متدیه هندی و ابن اتاکر در تاریخ زمش با در رسول الله لما استقرره اهل الجنه سل جنه وقتی اون آلم برپاد کد به اشتیا در بهشت متقرد کدن قانت الجنه بهش به سخن در میاد یاربه علیسه و عدتنی انتو زییننی بر رکنین من ارکانک خدایا به من وعده نداده بودی با درکن از ارقام خود از مرا زینت ببخشی یعنی بهش زینت میخواد بهش به خود بالیدن میخواد جواب میاد غاله خدا میگه علم او زیین که به حسن و هتین مگه بهش تو با حسن و هتین زینت دادم و ما سطح الجنه کما تمیش و عروض وقتی بهش میفهمه حسن و هتین اومدن تو بهش زینت بهش حسن و هتین مثل عروسی که به خود می و راه می روید بهش به کائنات می نازد میگه من حسن حسین دارم حسن حسین حسین سیدان سوابه اهل زیان نه لذا این خط رو پیغمبر در مقابل ابو حریره ها و کعب الاخبار ها و معاویه ها و مکتب تراش هایی که میخواد، خواهند مکتب اطلاع و قرآن را از اون حقیقت جدا کند. این شهره ها این گونه معرفی کردن خب حالا خود ما حسین یه کلمه از اونایی که یک عبارت از اون مصادیقی که روز آشورا گفته بگم چجوری خودش معرفی کرده بعد از اصحاب امام حسین بگم اجازه بدید یه شیتا رجز بخونم رجزهای روز آشورا که امام شناسان کربلا امامشون رو چجوری معرفی کردن ولی ابتدا از خود آقا شروع کنم اون آخر هم رجز خود آقا رو از کنم بعد اجازه بدید یه مقدار مبتل بخانیم امام حسین علیه السلام صبح روز آشورا وقتی در مقابل جمعیت قرار گرفت من جمله از فرمایشاتش بعد از خطبه بود الان ان الدعي بعد ركذ بين الثلث والذله هي او خدود ذليه ذلك ذا وجدود صابر وعجور طهرت وعنوف هميه ببینید چه عبارتی را میگه میگه ان الدعي ابن الدعي ان زنا, ای زنا این آلوده ای از نسل آلوده یعنی بدونید من هستم در موقع بده آلودگان و بدصفتان بدسرشتانی که میخوان با دین جد من بازی کنن قرار گرفتم قدرک ازه بینست نفین بینست زلط و زلط منو قرار داده بین دو حالت یا شمشیرها بر من فرو داید یا تن و زلط بدهم حیعات ما آخذ و دنیه. و ای بر منصور با که من هم به این پستی بدم اما به چه نکته اشاره می کند از الله خدا نمیخواد چه خدا منو بالاتر او بریده عبد الله و رسول ذالک و رسولو رسول خدا منو چگونی معرفی کرده و جدودن اون اجداد پاک من و حضورن تخرت اون دامن های ای که من تو اون دامن بزرگ شدم ما تن به زلت میدیم خدوم دامن من تو دامن زهرا شیر روشیدم من تو بغل زهرا بزرگ شدم من پسر علیم زهرایی که دامن شیلی به صورت من بزنیم بحلوی مرا بشکافی بازوی مرا تا دیانه بزنی ولی نیست از حمایت مولایم علی بر نمی به چه صورت؟ <تصفيق> علی کنار بستر زهرا نشسته زهرا جان زهرا جان جوان خساینه، زینبه، مملکت شیعه رو از خطرات دشمنان شیعه محبوس بده. لحراتو بستره علی جان میخوام رسیت کنم رسیت هاشو کرد وقتی تموم شد چشماشو دوخ به چشمای علی شروع اول گفت علی جان از من راضی هستی تمام وجودشو آقای علی گذاشته میخواد درس به من و تو بده جواب هر صبح جمعه تو دعای ندوه هر صبح تو مولا جان صاحب بعد زمان از من راضی هستی زهرایی که اونگونه جان میدهد میگه علی از من راضی هستی بعد شروع کرد گریه کل علی میداند من بفهمم زهرا جان برای چه گریه گرمی کنی جوانی هست نه که قم برام میشه پیغمبر گریه نداره بچه‌ها نه بابایی مثل تو دارن گریه نداره برای چی برای تنهایی تو در میانه این مردم گریه می‌کنی زهرا که جانش رو برای امام زمانش میدهد و دم مرگم میگذم از من راضی شدی گریه میکنه برای تنهای امام زمانش حسین میگه من رو این دار من بزرگ شدم شما خیال کردید برای چند روزه دنیا منو و قدرش از بینت ندین بینت زلط و زلط بین شمشی و بین من از شمشیر می کرسم و ذلت را برمی گذیدم حیات من نظر الله از ما دوره که تن به بدهیم ما در اون خانواده بزرگ شده ایم حالا جانم به صدای شهدای کربلا اجازه بدید نمونه هایی از اونا که حسین شناس بودن و روز آشورا اومدن خدمت ما حسین زیان فشانی کنند اجازه بدید از خور شروع کنم خور برگشت حالا اومده میدون داره رجز میخونه در مقابل این مردم انی انل خور و معو و زیفی من هم دارشم چیل میزنه می جنگ میخونه. می کنه از ربو بی اعناب کم به سیفی ان خیر من حل, حل به عرض الخیفی از رگو کم ولا ارو من حیفی من حري هستم که مهمان نوازم من حری هستم که قدر مهمونو میدونم از رفی انواع به سیفی با شمشیرم گردناتو میزنم ان خیر من حلد ارز الهیفی حمایت میکنم با شمشیر زدن دفاع میکنم از کسی که در سرزمین سیف منا مکه در اون وادی مقدس اینا خیرال ارزن اینا بهترین خلقن یعنی مردم شما بهترین رو میخواید از بین ببری من حاضرم داریم ولی از بهترین حمایت کنم جناب برایر اومد انا برایرون و ازی ليس لیشن یروع اتت اندت زیری یعرفتین الخیر خیر اهل الخیری از روکم ولا ارا من زیری کذا لکه فعل خیرم که از آکه فعل الخیرم برایری شمشیر میزنه جان بده انا برایرون من برایرم و عدی خزیر خزیرم قدر منه لیشون اون شیر گررنده یروع آسته میترساند شیران را اندر زیر در موبهی که نهره میزنه یعرف و فین الخیر احل الخیری احل خیر میدونن ما ها خیرمندیم ما ها خیردوشتیم ما ارزش دوستیم لذا اگه دنبال حسین زفتیم دنبال خیر رفتیم ازبد کو ولا من زایری میزنم شما رو حمله میکنم یک ذره ام عبا ندارم که این زدن من بد باشه بد که این حد است چون دارم بد رو میزنم کذاکف ال خیر من برگری این یت ل خیر که از بره داره سر میزنه یعنی فعل خیر حمایت از امام ولو به قیمت جانش نابه ابنه هلاله بجلی انا ابنه هلاله بجلی انا حضا دینه علی و دینه ها دینه نبی انا ابن هلاله بجلی من کسر هلاله بجلی هم انا علا دینه علی دین من همون دینه علیه یعنی شما را بذارید ما علی رو ترک می کنیم شما لشکر خوف رو اتا قیر گرت ما بگیرید بازم علی رو رهانه می کنیم انا علا دینه علی و او او دین و نبی دین علی همون دین نبیه عبدالرحمان ابنه عبدالله یزنی از منطقه یمنه از جبیله اویش درنیه عبدالله من آل یزن دینی علا دین حسین و حسن از رو بکم زر به فتن من الیمن ارجو به زوک الفوز اندر موتمن عبدالله من آل یزن. من پسر عبدالله از آل یزنم دینی میخواید دارم شمکی میزنم بدونی برای چیه ما مقام نمیخواد ما پول نمیخواد ما ریاست نمیخواد ما برای وابستگی های زنیایی نیست ما برای دینمونه دینی علا دین حسین وحسن همون راهی که اون دو بزرگوار راستن ما داری میریم از رود بکن زربت بطن منالیت یمن زربت میزنم زربت یک جوان مردی که از فتن یمن آمده ارجو بزاو کن، فاو بزاو کن، فوز اندل مطمئن. با ایشام شیر زدن، از خدا میخوام که فائز بشم و جعلی کنی کنار نفوز معصوم. ان شاء الله. میگه من میخوام هم ارجو بزاو کن، فوز اندل مطمئن. من این حمایت از امام حسین نه. میخوام پیش خدا فائز بشم. جون پلار سیاه. همه شنیدید اومد ماد چی فیرال کفار ضرب الاسدی بسيف ارجو به الجنه کفار میبینم خب این ضربه ها این قلام سیاه رو چی دونه می بینن به سیفه با این شمشیر ضربن انزنی محمدی میخوام ضربه بزنه از نسل پیغمبر آل رسول حمایت کنه از با انهم به لسان و یدی دفاع می کنم از آل علی با زبانم و با دستم یعنی با دست شمشیر میزنم با زبانم میگم علی, علی علی علی که برای این معلوم شده. ازظ و انها ب ساون ولدی بهی از جن اوم الموردی امید دارم با ایشان شیر زدن ها با این جنگدن ها با این دفاع کردن ها وارد بهش بدم. مالک که ب مالکی قد مالی بدعلم تو ماضق آب و آود دودانی وال و دهست ایی و قومی آفت اذانی لدل وغا و ماه و صاد فرسانی. آلو علیین شیعت و رحمانی زیاد زیادین و شیطانی نبینید از اشوهدهای کربلا در توی میگم بگه من مالکم از امون قبیله هستم که تو جنگ خندق بودن از بیغمبر حمایت کردن ما اون شجاعانی هستیم که شجاعان از ما میکرسن ما قهرمانانی هستیم در قبیلمون که در مقابل مردم میشیم قهرمانی آت‌منداز شو جا در چه مسیر به کار می‌بریم؟ آل و علیین شیعت و آل شیعت و شیعه شیطانی ما شیعه علی را آل علی را شیعه رحمان پیرو به خدا می دانیم آل زیاد را پیرو به شیطان یعنی در روز آشورا پریاد زدن این مطالعه کنی شیطان خواست بر رحمان غلبه کند اما خدا هرچه در آستین داشت به نام حسابی طای از آسین قدرت خود بیرون انداخت و به نام زینب از عالم ملکوت به عالم ملک رساب ف شیاطین را به بند و کشان زهیر بن الغیر زهیر شنیدید همون کسی که شب آشورا وقتی آقا فرمود سلامو میندازم پای هر چی میخواد بره بره مسلم بن ابسدیه پاشود آقا کجا بره زهیر بن غیر این شد آقا چی اگر برکنم از تو و بردان وران از کمه این دل کجا برم این میر بر که افکنم مگه میشه از جان جدا منو حساب بار بکشن و زنده کنن گو بکشن دست از تو بر نمیدارم و آلی که یه بار بیشتر کشته نمیشم حالا داره رجز میخونه انا زهیرون و انا بنالغینی از دودکم به سیفه ان حسینی انا حسینن احد و من اطرت البدر رتقه زینبی به انا زهیر و انس الغینی من زهیر پسر غیلم از دودکم به تیفان حسینی دفاع میکنم از حسین باشم شمشیرم اما کدوم حسین من از کی دارم دفاع میکنم من به گروهی ندارم من وابستگی حای جناحی ندارم اگر من بعدی انتقادها این چند روز کردم بعضی حرفا زدم و الله الی العظیم به خون گلو ی حسین به به هیچ دستهی به هیچ جناحی به هیچ عزبی چه سیاسی که مذهبی وابسته نیستم و نبودم و هر که مرا وابسته به یک گروه حساب کنست فردایتی آمد در مقابل عبی عبدالله عدو شکایت میکنم چون الله دروغ است من فقط و فقط به آل علی وابستم داره به میگه ان نه حسینن پهد و حسین یکی از اون تا الحسن و الحسین سیدات سباب اهل جننه، سبت نبی اکبرن من اثرت البر طبیه زینی از خانواده پاک و پاک دامانان زینت دارندگانن چناب حضیب ابن مداهر اومد جالم حبیبی پیر مرد ریشت تیره. یه عمری در مسیر علی و آل علی کار کرده انا حبیبون و عدی مزهر من حبیبم بابا مزهر فارس و ای جائن و هر بنتسر سوارهی که در موقع حیجان و در موقع اوج جنگ میتازم و میجنگم و جنگم شغل بر می شود. و انتومو اندل عدیده اکثر شما از نظر شمارش خیلی زیادی و نحن احلا حجتن و اظهر و ما از نظر دلیل و حجت بالاتر و آشکارتریم ما چی داره یاد میده و انتومو اندل عدیده اکثر شما اعدادتون بیشتره جمعیتتون زیاده و نحن علا حجتن و ازهر بر مبنای دلیل و حجت آشکار کردن حوادث ما خیلی بالاترین و انتمو اندل و فاع القدر شماها آینین و عهد شکنی و نحن و آفا منکمو و ما خیلی وفادارنده و دادرتریم حدن و ان کمو و که ما روش کنیم ما نمو کنیم ما بالا بیاییم چه بالا اومدنینیم باره دهرم ما موسیقی مظاهر رو زیارت که قابل بود و شرف شر بودی چه به ذریع حبیب صداتون بشه. شما چقدر پیش آقا تونستید نزدیک بشیر خوشح به حالتون یه کاری بکنید. مام دلمون رو بدیم دیا سرت پرده اینا بشین. جای دیگه اینا لذت می بردن. شمشیر میخوردن کیف میکردن. همین حبیب وقتی نماز نماز ظه آشوراش هنوز مونده بر می گردن. نماز ظهر شرا خوات بشه فری سال خودم یه کمیش بکنم. زهر آشورا میان گیر و دار، یک تن از اون آشدان بیغرار پوصحاب صاعدی بد نام وی کرده راه عشق را مرزان تی، در چنان قوا و آن جنگ و جدال عشق از کندش به شوق و وجد حال سوی شه بشتاف با سوز و گداز شغال دم حمیز از از نماز از نماز مرد حق تا نام برد شهز تعداد مسلینش شمار اذن شاه صادر شد از بحر اذان از ما از دن گفت کنان که صدایش عالمی مدهوش شد هرچه بود صاحب صدا خاموش شد اون از آن شد بر جهان پیغام بر جهانی مینمود نمود اعلام میآید این که می آید کنون بهر نماز کعبه را او ساخته اندر حجاب کعبه مقصود ایجاد است او. کعبه را او هم اصل و بنیاد است او. بر نماز اش شد تا امام عشق برمهراب شد بر نمازش هر طرف خواهی بیش در درون کعب رسم قبل نیش آرفان و رازداران عجیب حاملان عشق مسلم با حبیب باطنی چند از غجال پیش سینه را دادن مردان کلو تا سپر پیش شاهدین تا آید دیر بر سلطان دین اون نمازی که ستون دین بابد گرده پیغمتانی شنیدی این بود در همه عالم نمازی این چنین کب نخوندست و نخوند بعد از این خود نماز اشک بودی نامه سوت حد تکبیر اطول احرامه بی در قیام اولین بعد از روخ رو, رو تیرباران شد زهر جانت شروع کشتگان اشک پیش شاه اشک سردکت بگرسه هر یک راه اشک خونشون بنویش بر لوح حیاط از صلاح احل آلم از سلاح تا جهانیز این قیام او شود آگه از مخصود شاهن شه شود که این حسین با کشبگان عشق باز پسشون بودت احیای نماز این نماز زهر آقا نماز عصر کجا بود و نماز ات را بگذاش شا خود فرادا در میان قتلگاه اون نماز عشق که در خونش بزود آشب و مرشون. وقتی چیرها رو به جان استاد قفتاد جلو آقا حبیب بن مظاهر اومد بالا گفت داداش، خوش آقا حالت رفت دار شدی داری میری من نمیگم به من وسیعیت کن چون منم میخوام برم رو کشماش رو کرد یه مختصرم رم حدیداش گفت نه نه من هم دارم با انگوشت ششاره کرد به حسین به حاضر با زبان گفتن با جان جان بازی کردن اما وقتی از زهرای یاد گرفته بودن که وقت جون دادن گفت برای چند آیه علی گریه می کنم رضا به حبیب ابن میگه ظاهر می یه جوان سیزه چارده ساله مادرش نگاش کرده سه پسر تیغمبر تنها مادر جون اجازه میدی بله اومد آقا میخوام برم میدون آقا فرمودن ما شهید شده مادر داگار شده او مامانم میگه برو او اگه مادر گفته برو جوون 13 سال اومد میدونی من کیم خوده اینو نمیری و نعمل امیر سرور و فعاد وکیر ندیر علی یوم. فاطمه تن والداه وحل قامونا له من نظير له مثل شمس الظهر له قره مثل بدر المنير يجابون 18 ساله میگه میدونی آقا من کیه آقام حسینه یوا ای بابا در پای خوا و برای عرض تسریت به مولایم اه میوندم دیگه گناه نکنم سر جوون بریدن مادر جلو خیمه با بود نگاه میکرد پت کردن به طرف مادر مادر سر وزاش نگاهی کرد پت کرد به طرف دشمن. سری که در راه خدا داده ایم نمیگیریم نمی گیریم عمود خیمه را برداشت اومد میدون شروع کرد جنگیدن این اشعار خون انا عزوز و سیدی زعیف خافیتون وادیتون نحیف از رو بکن به ضربتن عنیف دون بنی فاغمتن شریف جود و سعی من زن اون بالیت و نیوه فرسوده شدم دیگه پیر شدم دیگه توانی ندارم ولی با همین تیرییم از رو رو کام به ضرتن یفه یا ضرده سنگینی رسکو ها ها چه چه از این سنگین حرف نظر چهده در شما میگیکییانم به فدایت اون نه به هم اجب به دشمن زدی از رو بکن به ضرربتن یفه دونه بنی سازه Sharifa, but نفس فاطمه عزیز من کنیز حسین میام میداد. عبدالله ابن مسلمت عقیله یکی از پفرای جناب مسلم عبدالله هست خوهرزاده ایمان حسین هم هست یکی از خواهران ایمان حسین غیر از از مادر حضرت زهرا همسر عبدالله ابن مسلمه پدر شهید شده دو تا برادر از ایر کوفن اینم آلا شمشیر برداشته جوان برای دینش بینشه میکنه ببین برای حمایت دین چه میکنه الیوم الها متب من و بهدی امروز بابام ملاقات میکنه یعنی حالا شرید میشه میرم پیش باباش بهبا ابی او بابای منه و با بادو الا دین نبی و اون جوون مردانی که برای دین نوی کشته شدن منم میرم پیششون لیسو به قوم عرفو بالکذبی نه مردم دروگو مردم حقه باد دنیا دوست لاکن خیارون و کرام و اون مردم ارزنده بزرواری که حسب و نتبشون آلیش من عوشمن صادات و اهل الحسبی از بنی حاشم که حسبشون خیلی بالا جعفر ابن عقیل جعفر برادر عزیز مسلم که سر جناب عقیل اومد بیدان انال بلامو الابتهی و طالبی من معشرین فی عوشمن و غالبی و نحنو عدن صادت و زبایبی آزا حسینون اتیب و من اطرت البر تغیی الاغبی بگم من یه قلام اب طالبیم از آل ابی طالب من یه غلامم در مقابل با آل ابی طالب عقیل پسر ابی طالب علیم پسر ابی طالب حسین پسر علیه من پسر مسلمم مسلم پسر عقیل عقیل پسر ابی طالب من یک غلام از اینا هستم یه جوون از اینا من فی فیهم من بقالوی ما از اون خانواده هاشم و جدش طالب و نه حنا حثن سعادت الزباوی ما در میان بشریت مثل موهایی که زلفاش درخش ما تو بشریت درخشنده ای ما تو بشریت خام خود درخشنده بشریت او علی طالب هست. و در این کاخ درخشنده بشریت حالا ها حسن حسین قطیب العطاوی و این حسین با پاک دین پاکیزه هاشون است من اثرت البر خدیل اوببی و از اثرت پیغمبر پاک و ظاهد عبدالرحمن ابن عقیل برادر دیگر از امام مستفی از شهدای کربلان علی عقیل و عرف و مکانی بابام عقیل منو بشنسید من من و حاشمان اخوانی ما از نسل آشمیم و بنی آشم برادران ما کهول و صدق سازت و لعدرانی. ما اون پیران ارزنده راستگوی آقای شجاهانیم آزا حسین و شام خلبانیانی ای حسین که ریشه پی و قیعه اصافش خیلی بالاست و سید و شیبه و و آقای پیر و جوان اوست محمد ابن عبدالله ابن جعفر ابن عبی طالب پسر حضرت زینب سلام الله علیه ها محمد ابن عبدالله ابن جعفر ابن عبی طالب یکی از پسرای جناب عزت زینب که تو جمله ای بگم وقتی عبدالله دستش زخموند نمیتونست تو یک کربلا بیاد پسر جعفر تیار پسر احموی عزت زینب شوهر عزت زینب وقتی که از امام حسین از مکه خاستیان عبدالله خودتایی کرد کاروان می یه مقداری جلو किडान یه شبی از دور میدوه امام حسین تا روز صحنه بیادیدن عبدالله دست دو تا بچهای خرسالشو گرفته از بچه های حضرت زینب و آقا جون من که دستم زخم نمیتونم این دو تا بچهام با شما باشن بعد از واقعی کربلا که اهل بیت برگشتن در مدینه عبدالله به حضرت زینب همسرش گفت که بانوی عالم راست میگن هر شهیدی شهید تو از قیمه میدیدیم می umat بیرون اما دو تا من شهید شدن از قیمه umat بیرون على الله انغا محمد ابن عبدالله الله ابن جعفر ابن عبد الله عبدالله خرسالم هست دقت کنید نشکو الله من العدواني دیگه خدا از این مردم به تو شکایت میکنه نشکو الله من جنگ به تال قوم فرد عمیانی ینگه یه مردم خرباطی که کورکورانه به هلاکت میافتند یه کودک ولی فرزند زینب تو دامن زینب دور شده. پس ترکو معالم القران. این مردمی که معالم قران رو ترک کردند و محکمت تنزیل و تبیانی اون پایهای محکم نزول الهیات آیات الهی و محکماتش رو تبدیل کننده رو کنار زدن و اظهر الکفر مع تبیانی با این تبیانی که کردن کفرشون رو آشکار کردن. اینم چند کلمه بخونم وقتی همه شهید شدن خدا آقای امام حسین اومد رعد امام حسین زیاده یه چند تاشو میخونم کفر القوم و تضمن رعب و خوف ورزیدم خوب خود کنید آشورای 14 در قبل و در نظر بیارید عصر عاشورا همه شهید شدن آقا تنها سوار بر مرکب داره خودش شما معرفی میکنه فرول قوم و تضمن رعب و انسباب ظاهرت بسدل این مردم کف ورزیدن از قبلم این کینه رو داشتن از رد سدله کوابش باز موندن قتل القوم علیان و همش از باباش علی میگه قتل القوم علیان و ابنهو حضن الخیر کریم العبوینی این مردم همو مردمی هم که علی رو کشتن پسرش حسن رو که اون همه ارزنده بود کشتن حنقن منعون و غالو اجمهو اخشر و نا الاخردل هتینی روی ای که داشتن گفتن جم بشید هنگن رو هقل و منه از روی حسادت و گارو گفتن اجمه او جم بشید خوش رو ناب هر هربل همه با هم اتفاق کنید به جنگ حسین برای چی لاد شیئن کانه منی قبل ازام دیر فخری به زیاء نگیره برای چی جد این نبود که ما استخار داریم پسر علی و فاطمه اینا حسودا نمیتونن تحمل کن زهران امی و علی قاسم الكفر به بدرن و هنینی مامان فاطمه بابام علیه قاسم الكفر به بدرن و هنینی در بدر و کفار را از بین بود و علی شمسون و امی خبرون و انال کن کبو بین القمرینی و علی شمسون و امی غبرون خورشید درخشنده اسلام بابانه و دمون قمر درخشنده ای که بگرد این خورشید میگشت مادرمه و انال که او کبا به و من اون ستاره درخشنده ای هستم که بین این دوتا می درخشم اما این مردم نمی تحمل کنند از قرآن خودسین را علی را ایلال آمن و عمل و سالحات معرفی کرد چین و زیتون معرفی کرد و لگه از خلق من انشان بی احقن تدمیم بر مبنای مکتب اونها پیغمبر زینت بهش معرفی کرد پیغمبر نگارش عرشت معرفی کرد اصحاب هم اینجوری معرفی کردند، حالا داریم در آشورا ببینیم خود ما حسین چه کرد سمدال اومد در مقابل مردمی خطبه ای خون مقال اما بعد شبونی بونی فنزرو من انا نسبو منو نگاه کنید من کیم سم مراجعو انفسکم و آتبوها فنزرو حلیت لهو لکم قتلی و انتحاک غرمتی به نفستون مراجعه کنید به خودتون برگردید خودتون رو سرزنش کنید هل یسله لکم قتلی و انتها و حرمتی باید قتل من صلاح شما هست حتی حرمت من به صلاح شما من پسر پیغمبر شما نیستم و ابن وسیعی و ابن من پسر پسیعی همون جا می... کجا نمیادم این مردمی که اغده علی دارن ولی حسین مگه کجا میان بگی من پسر پیغمبر و پسر ردیه پیغمبر و ابن هم پیغمبرم و اول مؤمن مصدقن لرسول الله همان علی که اول مؤمنی بود که قیقمبر رو تصدیق کرد به ما جا بهی من اندرده اولیش همزه سید و شهدا امی همزه سید و شهده اموی ما نبود اولیش جعفر و تیار به جناحین امی آیا جعفر تیار که با دوبار در بهش پرواز میکند اموی ما نبود اولا یبلغ ما قال رسول الله بله اخی حاضان سیده شباب احل الجنه به شما نرسیده که جدم گفت این دوتا آقای جوانان بهشتن و این صدبتمونی به ما عبور و حبل هست و الله ما تعمد تو کزمن مدعلم تو این الله یمگوتو علیه احلو و این کذبتمونی و این نفی کن من خدا قسمت زخی که میدانیم خدا دروغ را بد دارد و دروغ نگفتیم قبول نداری؟ الله اکبر سخن حسینم قبول نکند قبول ندارید و ان فیکم من انس الصموح ان ذالک اخبركم در میان شما پیر و مردانی هست و از اونا سوال کنید بگید به شما بگن قاب امام حسین داره اینجوری صحبت میکنه اونا چیکار کردن وقتی امام علیه السلام این صحبت ها رو میکرد گفتن که سنگ از هر طرف به امام ببارید سنگ ها رو از هر طرف به سوی امام بارنده امام خسته شد و خیصریه ساعتا وذعفان و باباغا صح بیا خریحو ساعتا آقای چند لحظه اونجا ایستاد که استراحت کنه فقط زعف انل غتان از مقابله ضعیف شده بود یه مداری خسته شده بود و بینما و بابو دفند اذ عطا و حجرون و بدا فی اینجور که بود استراحت کنه عجب استراحتی با آقا دادن یک سنگ اومد خورد پیشانی آقا و اخذت صوبه لیم سعد جمعن وجهه آقا دامن پیراهن و بالا بود